در معنی این که ارنال کماهی ای خروسان از ویا موزید بانگ بانگ حق کند نه بحر دانگ صبح کاذب آید و نفری بدش صبح کاذب آلم و نیک و بدش اهل دنیا عقل ناقص داشتند حال که صبح صادقش بنداشتند صبح کازب کاروانها را زده است که به بوی روز بیرون آمده است صبح کازب خلق را رهبر مباد کودهد بس کاروانها را به باد ای شده تو صبح کازب را رهین صبح صادق را تو کاظب هم مبین گر نداری از نفاق و بد امان از چه داری بر برادر زن همان بدگمان باشد همیشه زشت کار نامه خود خاند اندر حق یا آن خسان که در کجی ها مانده اند انبیا را ساهر و کج خوندند وان امیران خصیص قلب ساز این گمان بردند بر حجره ایاز کو دفینه دارد و گن جندران زاجنه خود من در دیگران شاق میدانست خود پاکی او ایشان کرد او آن جست و که امیران حجره را بخشای در نیم شب که باشد اوزان بی خبر تا پدید آید سگالش های او بعد از آن بر ماست مالش های او مرسوم را دادم ان ذر و زرگوهر من از آن ذرها نخواهم جز خبر این همی گفت و دل او می تفید از براج آن عیاز بی ندید. که منم که این بر زبانم می گرود، این جفاگر بشنود او چون شود. باز میگوید به حق دین او که از این افزون بود تمکین او، کی به قصف زشت من تیره شود؟ و از غرز و سر من قافل بود مبتلا چون دید تعویلات رنج برد بیندکی شود او ما رنج صاحب تعویل ریاز صابر است که به بهر آقبت ها نازر است همچون یوسف خواب این زندانیان هست تعویلش به پیش او ایان خواب خود را چون نداند مرد خیر کو ود واقف ز سر خواب غیر گرزنم تیغ او را زمتان کم نگردد وصلت آن مهربان داند او کان تیر بر خود میزنم من ویم اندر حقیقت او منم